گروت بر شما شنوندگان وفادار راژیو الورز خبرهای دانمارک در هفته که گذشت رو به سهم شما عزیزان میرسونم با ما همراه باشید. یک دختر دانمارکی به جرم حمایت از تروریست به زندان افتاد دانمارک برای اولین بار یک دختر را به جرم حمایت از گروه تروریستی به زندان میاندازد به گزارش بیتی این دختر 16 ساله که نامی از او میان نور نیامده احتمالا به چهار سال زندان محکوم شد این دختر متهم است در پی بمبگذاری در یک مدرسه یهودی در کوپنهاگ بوده است وکلای این دختر به نحوه محاکمه و زندانی نمودن این دختر اعتراض دارند چرا که او هنوز در قانون دانمارگ یک کودک محسوب شود. نافگان شهری آلبرگ دانمارک با و هفتاد میلیون کرون نو سازی می شود. سخنگوی شهرداری آلبرگ از عقد قرارداد برای خرید اتوبوس خبر گفت پس از طی شدن مراحل این قرارداد تا سال 2021 تمام ناوگان حمل و نقل عمومی شهر آلبرگ با هزینه 270 میلیون کرون تغییر کند شهر آلبرگ در شمار یولان جای دارد و دومی شهر بزرگ این شپ جزیره به شمار می رود. جمعیت آن پایه آمار سال 2010 برابر با هزار نفر بوده است که آلبرگ را تبدیل به چهارمین شهر بزرگ کشور پس از کپنایگ، آوس و اودنسه کرده است. مسافت شهر آلبرگ 139 کیلومتر می باشد. ترکیه از بازداشت دو طبعه دانمارکی سوئدی مظنون به تررایی حمله در اروپا خبر داد شبرکه تیوی تو گزارش داد یک طبعه دانمارکی و یک طبعه سوئدی که مزمون به برنامه ریزی برای انجام حمله برای گروه تروریستی داعش در اروپا هستند ده روز پیش در جنوب ترکیه بازداشت شدن به گزارش خبرگزاری تیوی تو از آنکارا، این منبع تصریح کرد این دو نفر یک دانمارکی لبنانی تبار 35 ساله و یک سوئیدی 38 ساله عراقی تبار می باشند هر دو در سوریه آموزی و به طور غیر وارد ترکیه شدن پلیس در بازرسی از خانهی در آدانا در جنوب ترکیه این افراد را بازداشت و به مدت ده روز بازجویی کرد براساس این بازجویی این افراد سه سال پیش به گروه داعش پیوستند. سازمان اطلاعاتی سوئد این اخبار را تعیید کرد سخنگوی این سازمان به یک نشریه سوئدی گفت ما اطلاعاتی از مسئولان ترکیه دریافت کردیم که بر اساس آن یک شهروند سوئدی در ترکیه بازداشت شده است به افزود ما در حال بررسی اطلاعاتی بیشتر در مورد بازداشت این فرد و تحقیقات مسئولان ترکیه ای هستیم دانمارک رتبه نخص مصرف محصولات ارگانیک در جهان محسسه F.I.B.L. سوئیس اعلام کرد در تازه ترین بررسی انجام شده در میان 178 کشور جهان بیش از 4 ممیز 8 درصد از محصولات غذایی در دارمارک ارگانیک هستند که بالاترین میزان در میان کشورهای جهان میباشد بر این اساس پس از دارمارک مردم سوئیس بیشترین مصرف کنندگان محصولات ارگانیک در جهان هستند. همچنین مقامات شهری کپنهاگ اعلام کردند که در قالب برنام در نظر دارند که بازار 88 درصد از محصولات غذایی در این شهر را تا سال آینده میلادی با محصولات ارگانیک جایگزین کنند. که این اقدام, که این اقدام کوپناک... کوپناک را به شهر اول محصولات ارگانیک در جهان تبدیل خواهد کرد. محصولات غذایی ارگانیک در راستای توصیه پایدار کشاورزی پایگذاری شده است و به مجموعه از عملیات نا گفته می شود که با هدف کاهش مصرف نهادهای های غیر به اجرادارند مهاجران مقیم دارماک شهروند درجه دو حساب می شوند یکی از دغدغه‌های اصلی مهاجران ساکن دارماک تغییرات هر ساره قوانین مهاجرتی این کشور میباشد طی سالهای اخیر در دارماک تغییرات بسیاری در قوانین مهاجرتی به وجود آمده است از جمله مواردی چون لایحه پیشنهادی جدید 2017 که در آن شهروندان به دو دسته درجه یک و درجه دو تقسیم می شوند شهروندان درجه یک ملیتی نیستن یا به عبارتی مهاجر به حساب نمی آین. شهروندان درجه دو مهاجرانی هستن که به خود یا خانواده آنها به دانمایک آمده و به عبارتی دیگر ملیت کشوری دیگری دارن در این لایه بسیاری از شع... حقوق شهروندان از یک دیگر متمایز شده است البته هرچند چندین احساب دانمارک گفته بودند که این قانون را وeto میکنند ولی معلوم نیست این قانون تصویب می شود یا خیر در صورت تصویب شدن این قانون یک مهاجر هرگز دیگر دارماکی محسوب نمی شود حتی کسانی که متولد دانمارک میباشند رهبر حزب مردم دانمارک خواستار تمدید دائمی کنترل مرزها شد بر اساس قوانین اتحادیه اروپا رفت آمد مردم در منطقه شنگن آزاد است اما در پی بحران پناهجوان برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا بار دیگر اعمال بازرسی های مرزی از جمله بررسی گذرنامه افراد و بازرسی خودروهای های عبوری از مرز را آغاز کردند در دارماک همه احزاب سیاسی با تمدید کنترل مرزی موافق نیستند در این ارتباط رهبر حزب مردم در پارلمان این کشور با رد تمدید کنترل مرزی گفته است ما باید برای بازگشت به مرزهای ملی تلاش کنیم تولسن هدل روز شنبه در پیام ویدیویی‌دی ویدیوی خود با بیان اینکه ما دنبال کنترل دائمی مرزهای دانمارک هستیم از مردم خواست درخواست کرد در تصویب قانون جدید به او کمک کند. پست دانمارک هزار نفر از کارمندان خود را اخراج می کند. روزنامه اکسرا بلا از برنامه پست دانمارک که بزرگترین شرکت پستی در اسکاندیناوی و این کشور محسوب میشود. برای اخراج هزار نفر از کارمندان خود خبر داد بر اساس این گزارش پست دانمارک به منظور کاهش حزینه و کوچکسازی خود و همچنین به دلیل رکورد در زیاندهی تصمیم گرفته تا یک هزار نفر از کارمندانش را اخراج و برخی از شبه های مختلف خود را تعطیل کند نیک یاکوبسن دانمارکی مقام نخست مسابقات کایت سیلفینگ در آفریقای جنوبی را از آن خود کرد این ورزشکار دانمارکی در حضور بیش از هشت هزار تماشاگر مشتاق که برای دیدن این مسابقه به سواحل بیکپیر آمده بودند، موفق شد بالاتر از جمعی که بزرگترین کایت سلفینگ جهان برای نخستین بار برای سر روی نخست پیسند هارون هادلو از بریتانیا که سال گذشته در این مسابقه قهرمان شده بود در مکان دوم قرار گرفت. پارلمان اروپا توافق یوروپل را پذیرفت پارلمان اروپا رأی داد که دانمارک به کشورهایی که با یوروپل همکاری می کنند افسوده می شود بر اساس تغییراتی که در مقررات اتحادیه اروپا و معافیت دانمارک از سیستم قضایی این اتحادیه در صورت عدم حصول این توافق همکاری دانمارک با پلیس یوروپل از اول می امسال قطع می شود بحث برداشته شدن معافیت قضایی در دسامبر سال 2015 به همه پرسی گذاشته شد اما مردم دانمارک آن را نپذیرفتند. رد درخواست سخت برای اعطای تابعیت حزب مردم دانمارک از دولت خواسته در سال در سال تنها به هزار نفر تابعیت دانمارکی اعطا شود اما خانم سوربک وزیر مهاجرت و همیاری مخالفت خود را با این درخواست اعلام کرد. بین سالهای 2013 لی دو هزار و پانزه سالانه حدود سی وسه نفر تابعیت دانمارکی اعطا شده که در مورد انتقال حزب مردم قرار گرفته اما بلافاصله بعدتر موضوع کاهش اعطای تابعیت احصاب لیبرال و کلیه احصاب مخالف به شدت آن را رد کردند اما وزیر در این حال قول داد که فرایند پذیرش را سختتر کند افزایش 25 میلیون کرون کمک دانمارک به پناهندگان فلسطینی. دانمارک مبلغ 25 میلیون کرون معادل سه ماهیز 6 میلیون دلار بیشتر در اختیار آژانس امداد و کار کار سازمان ملل متحد برای پناهندگان فلسطینی در لبنان قرار داده است. دانمارک در میان 20 کشور تاکنون کننده اول دنیا قرار دارد. لایحه ای تقدیم پارلمان شده که در, در... که در آن از این که بیشتر از 50 درصد جمعیت برخی مناطق دانمارک مهاجران بودن ابراز نگرانی شده است اما به نظر می رسید که ای در این لایه آمده است کسی که در دانمارک متولد نشده هرگز دانمارکی محسوب نمی شود. در این لایه همچنین آمده پارلمان بر این اعتقاد است که در هیچ منطقه دانمارک نباید در اقلیت باشند دانمارکی ها در اقلیت نباید باشند از این نوشته چنین برداشت می شود که مهاجران هر... هرگز دانمارکی نخواهند شد. سخنگوی حزب لیبرال از این سوی تفاهم ابراز تأسف کرد و گفت مهاجران زیادی هستند که دانمارک را به عنوان خانه خود پذیرفته و با فرهنگ و آداب و رسوم آن خو گرفتند که ما از آنها دانی می کنیم میکنیم. آخرین خبر جزایر فارو دانمارک در مسیر خود مختاری جزایر فارو با اعلام یک همه‌پرسی درباره یک قانون اساسی جدید، قدمی در راستای کسب استقلال دانمارک برداشت است. قرار است این پرسی در روز 25 آوریل سال 2018 برگزار گردد. تندرستیتون پایدار. عزیزان